فصل نهم پشتکار تلاش پایداری که برای برانگیختن ایمان لازم است گام هشتم به سوی ثروت پشتکار پشتکار عاملی است اساسی در روند تبدیل میل به معادل پولی آن مبنای پشتکار قدرت اراده است قدرت اراده و میل وقتی به درستی با هم ترکیب میشوند دیگر هیچ چیز نمیتواند در مقابل آنها مقاومت کند کسانی که ثروت هنگفتی جمع می کنند عمومن خونسرد و گاهی بیره نامیده می‌شوند. این داوری اشتباه است. آنها قدرت اراده را با پشتگار در هم می و به کمک میلهایشان می تا دستیابی به اهدافشان را تضمین کند. مثلا هنری فورد زیاد مورد سوءتفاهم تفاهم قرار می گرفت و او را یک فرد بیره و خونسرد تلقی می کردند. دلیل این سوی برداشت این بود که هنری فورد همه برنامه‌هایش را با پشتکار تا آخر ادامه می‌داد در حالی که اکثرا افراد آمادند با دیدن اولین علامت مخالفت یا بدشانسی اهدافشان را کنار بگذارند و تسلیم شوند تعداد کسانی که علارغم مخالفت‌ها ادامه می‌دهند تا به هدفشان برسند کم است پشتکار شاید هیچ معنی ضمنی ای نداشته باشد ولی رابطه خصوصیت فرد به شخصیت او مثل رابطه کربون و فولاد است. کسب ثروت معمولاً مستلزم به کار بردن هر سیزده عامل این فلسفه است. همه یک کسانی که پول جمع می کنند باید این اصول را درک کنند و با پشتکار با آنها عمل کنند. آزمون پایداری اگر شما این کتاب را با این نیت می‌خوانید که دانش و آگاهی کسب شده از آن را عملی کنید، اولین محک پشتکارتان این خواهد بود که ششگامی که در فصل دوم ذکر شده است را بردارید. مگر اینکه یکی از آن دو نفر از صد نفری هستید که برنامه های مشخصی برای رسیدن به هدف دارند و دستور ها را به طور معمول به کار می برن. نداشتن پشتکار یکی از علل اصلی شکست است علاوه بر این تجربه هزاران نفر ثابت کرده است نداشتن پشتکار نقطه ضعف اکثر افراد است نقطه زعفی است که با تلاش می توان بر آن غلبه کرد و داشتن پشتکار به شدت میل فرد بستگی دارد نقطه شروع همه دستاوردها میل است این را همیشه به یاد داشته باشید میل ضعیف نتایج ضعیف به بار می آورد. همانطور که آتش اندک گرمای کمی ایجاد می کند. اگر فاقد پشتکار هستید با تهیه آتشی قویتر بر پایه میلهایتان هایتان می این نقطه ضعف را ترمیم کنید. پس از پایان این فصل به فصل دوم بازگردید و شروع کنید به انجام دستورالعمل‌هایی که در رابطه با آن ششگام داده شده است. اشتیاقی که شما با آن این دستورالعملها را دنبال می کنید به روشنی نشان خواهد داد که شما واقعا چقدر زیاد یا چقدر کم میل به جمع کردن پول دارید. اگر می بینید که بی تفاوتید، قبل از اینکه مطمئن شوید که دنبال ثروت هنگفت هستید، مطمئن باشید که هنوز ثروت باوری که باید داشته باشید را کسب نکرده ای. ثروت جذب کسانی می شود که ذهنشان آماده شده تا آن را جذب کنند درست مثل آبی که جذب اقیانوس می شود در این کتاب همه محرک های لازم برای تنظیم کردن ذهن با امواجی که چیز مورد علاقه تان را جذب خواهد کرد یافت می شود اگر می بینید پشت ضعیف است توجه خود را به دستورالعمل هایی که در فصل قدرت آمده است معطوف نمایید خودتان را در محاصره گروه مغز متفکر قرار دهید و از طریق تلاش مشارکتی اعضای این گروه پشتکارتان را پرورش دهید. در فصلهای مربوط به خود تلقینی و ذهن نیمه خداگاه دستور دیگری در مورد پرورش پشتکار خواهید یافت. دستور که در این فصل آمدند را دنبال کنید تا عادتتان در مقابل ذهن ناخداگاهتان تسلیم شود. و تصویر روشنی از چیز مورد علاقه‌تان پیدا کنید از اینجا به بعد است که دیگر به خاطر نداشتن پشتکار عقب نخواهید ماند ذهن نیمه خداگاه شما دائما چه بیدار باشید چه خواب کار می‌کند ثروت باوری در مقابل فقر باوری تلاش‌های پراکنده و هر برای به کار بردن این قوانین برای شما ارزشی ندارند اگر می به نتیجه برسید باید همه قوانین را آنقدر به کار ببرید تا به کار بردن آنها برایتان یک عادت ثابت شود. شما به هیچ روش دیگری نمی توانید ثروت باوری لازم را پرورش دهید. فقر جذب کسی می شود که ذهنشان را میپسندد. پول جذب کسی می شود که ذهنش آماده شده است تا آن را جذب کند. فقر باوری ذهنی را گیر می اندازد که ثروت باور نباشد. فقر باوری بدون کاربرد آگاهانه عادات خلاف آن رشد می کند. این یعنی ثروت باوری باید آمدانه در افراد ایجاد شود مگر آنکه با ثروت باوری ذاتی به دنیا آمده باشید. اهمیت جملات پاراگراف قبلی را دریابید تا به اهمیت پشتکار در ثروت پی ببرید اگر پشتکار نداشته باشید قبل از اینکه شروع کنید شکست خواهید خورد اگر پشتکار داشته باشید پیروز خواهید شد اگر تا حالا کابوس دیده باشید به ارزش پشتکار پی برده اید شما به حالت نیمه بیدار در بستر دراز کشیده اید و احساس می کنید دارید خفه می شوید و قادر نیستید که بچرخید یا عضلاتتان را تکان دهید می بینید باید شروع کنید به بازیابی کنترل عضلاتتان با تلاش مستمر و قدرت اراده‌تان، بالاخره میتوانید انگشتان یک دست را تکان دهید. با تداوم حرکت انگشتان خود، کنترل ازولات یک بازو را به دست می‌آورید تا اینکه میتوانید آن بازو را تکان دهید. سپس کنترل بازوی دیگر را به همین ترتیب باز می‌یابید. در پایان، کنترل ازولات یک پا و سپس پای بعدی را باز می‌یابید. سپس با تلاش فوقلاده اراده کنترل همه از را باز میابید و از خواب که یک کابوس است میپرید. این مراحل را گام به گام طی کردید. بیدار شدن از رخفت ذهنی شاید مشابه بیدار شدن از کابوس لازم باشد از سکون و سستی ذهنی که پیدا کرده اید بیرون بپرید. ابتدا باید آهسته حرکت کنید سپس سرعت خود را افزایش دهید و بالاخره کنترل کاملی بر روی ارادهتان پیدا کنید هر چقدر هم مجبورید در ابتدا آهسته حرکت کنید پشتکار داشته باشید موفقیت با پشتکار حاصل خواهد شد اگر گروه مغز متفکرتان را با دقت انتخاب کنید در این گروه لاقل یک نفر را خواهید داشت که در رشد و پرورش پشتکار به شما کمک خواهد کرد بعضی از افرادی که ثروت عظیمی اندوختند، از روی ضرورت چنین کردند. آنها عادت پشتگار را در خود پرورش دادند چون چنان به وسیله شرایط هدایت شدند که مجبور بودند پشتگار پیدا کنند. هیچ چیز نمیتواند جایگزین پشتگار شود. هیچ خصوصیت دیگری نمیتواند جای آن را بگیرد. به یاد داشته باشید، در ابتدا حرکتتان مشکل و آهسته به نظر میرسد. ولی یاداوری نتیجه بخش بودن پشتکار میتواند به شما قوت قلب بدهد. کسانی که عادت پشتکار را در خود پرورش اند در مقابل شکست بیمه شدند. آنها هر چند بار هم شکست بخورند، بالاخره از نقطه اوج پله موفقیت سر برمی آورند. گاهی به نظر میرسد یک راهنمای پنهان وجود دارد که اول افراد را در مواجهه با همه ی تجارب دلسرد کننده بیازماید. کسانی که بعد از اینکه شکست می‌خورند بلند می‌شوند و دوباره به تلاش ادامه می‌دهند، به مقصد میرسند و دنیا به آنها می‌گوید آفرین، من می‌دانستم تو می‌توانی این کار را انجام دهی. راهنمای پنهان اجازه نمی‌دهد هیچ کس بدون پشت سر گذاشتن آزمون پشتکار به موفقیت عظیم برسد. کسانی که امتحان پشتکار را قبول نشوند، در کل نمره قبولی نمی‌گیرند. کسانی که این امتحان را می‌دهند و نمره می‌آورند، به خاطر پشتگاری که از خود نشان می‌دهند، پاداش بزرگی دریافت می کنند. پاداش آنها این است که به هدفشان می رسند. تازه چیز مهمتری هم دریافت می کنند و آن این است که میفهمند هر شکستی بزر یک امتیاز همردیف را با خود به ارمغان می‌آورد. بر فراز شکست ها این قانون استثناهایی دارد. بعضی از افراد از روی تجربه به درستی پشتکار پی می برند آنها کسانی هستند که شکست را به عنوان چیزی جز یک وضعیت موقت نمی بینند. آنها کسانی هستند که میلشان چنان با پشتکار به کار گرفته می شود که سرانجام شکست به پیروزی تبدیل می شود ما که در هاشی زندگی می استیم می بینیم خیلی ها شکست می خورند و هرگز دوباره بر نمی خیزند کسانی را میبینیم که تنبیه شکست را میل به تلاش بیشتر میدانند این افراد خوشبختانه هیچگاه یاد نمیگیرند که دندعقب زندگی را بپذیرند اما آنچه ما نمیبینیم، آنچه ما اکثرا به وجود آن شک نمی کنیم قدرت ساکت و غیرقابل مقاومتی است که به کمک کسانی میآید که در مواجهه با دلسردی به تلاش خود ادامه میدهند ما این قدرت را پشتکار مینامیم چیزی که ما همه میدانیم این است که اگر کسی پشتکار نداشته باشد در هیچ حرفه یا کاری به موفقیت قابل توجهی نمیرسد همین حالا که دارم این سعتها را می نویسم سر از روی کارم برمیدارم و به جلو نگاه می کنم بیرون یک خیابان آن طرفتر تئاتر شهر نیویورک برادوی است مردم از سراسر سر جهان به برادوی می تا شهرت، ثروت قدرت عشق یا هرچه انسانها نام آن را موفقیت می‌نامد، به دست آورند. هر از گاهی یک نفر از این افراد سر بر می‌آورد و دنیا می‌شنود که یک نفر دیگر بر برادوی تسلط یافته است. اما با سرعت و راحتی نمی‌توان بر برادوی مسلط شد. برادوی استعداد را به رسمیت می‌شناسد، نبوغ را قبول دارد و تنها در صورتی پاداش می‌دهد که فرد دست از کار و تلاش نکشد بعد می‌بینیم کسی راز تسلط بر برادوی را کشف کرده است راز این است که او همیشه به این کلمه چسبیده است پشتکار این راز در تلاش فانی هرز که پشتکارش بر مرکز تئاتر نیویورک غلبه کرد نمود پیدا کرد هرز در سال 1915 به نیویورک آمد تا از طریق حرفه نویسندگی ثروتمند شود این ثروت زود به دست نیامد اما بالاخره به دست آمد خانوم هرتز به مدت چهار سال از روی تجربه عینی خود نمایش پیادهرو نیویورک را زندگی کرد. او روزها کار می کرد و شبها انتظار میکشید. او وقتی امیدش ضعیف می شد نمی گفت بس دیگه برادوی تو بردی بلکه می گفتفت خوب خب برادوی تو شاید من اذیت کنی ولی من قصد دارم تو را مجبور به تسلیم کنم. یک ناشر سی بار کار او را رد کرد تا اینکه او بالاخره یخ را شکست و داستان خود را به تایید رساند. هر نویسنده معمولی مثل هر آدم معمولی در دیگر قشها وقتی کارش اولین بار رد می شود دست از تلاش میکشد اما او چهار سال سنگفرش های را طی کرد و هر بار با پاسخ نه ناشر مواجه شد. چون عزم خود را جذب کرده بود که برنده شود بالاخره کارش نتیجه داد سیلاس شکسته شد راهنمای نامرئی فانی هرس را آزموده بود و او از این آزمون سربلند بیرون آمده بود از آن زمان به بعد ناشران دائما به خانه ای او رفت و آمد داشتند طوری پول به سمت او روانه شد که او فرصت نمیکرد آن را بشمارد سپس اهالی سینما او را کشف کردند و پول سیلاسا به سمت او جاری شد حقوق ساخت فیلم از روی آخرین رمانش که خندگی بزرگ نام داشت صد هزار دلار بود که گفته می شود بالاترین قیمتی است که تا آن زمان برای داستانی پیش از اینکه چاپ شود پرداخت شده است. و ضمننا حق و تعلیف او از فروش این کتاب احتمالا خیلی بیشتر خواهد بود. شاهد نمونههایی بودید که نشان میدهد پشتکار قادر است چکار کند. جو دیدید مردان و زنان به ثروت عظیمی دست می مطمئن باشید آنها ابتدا پشتکار پیدا کردند کار در برادوی می تواند یک که برای هر کس فراهم کند اما از کسانی که دنبال ریسک بزرگ هستند پشتکار میخواهد پشتکار واقعا نتیجه می دهد پشتکار یک حالت ذهنی است بنابراین میتوان آن را پرورش داد پشتکار مثل همه ی حالات ذهنی بر اساس دلایل مشخصی است که بعضی از آنها به شرح زیر است الف هدف مشخص و معین شناخت خواسته ها اولین و شاید مهمترین گام به سمت پرورش پشتکار است یک انگیزه قوی فرد را مجبور میکند بر مشکلات فراوانی غلبه کند ب میل کسب و حفظ پشتکار در جستجوی خواسته و میلی که شدید باشد نسبتا راحت است پ خود اتکایی باور به توانایی خویشتن در عملی کردن یک برنامه فرد را تشویق می‌کند آن برنامه را تا آخر با پشتکار ادامه دهد خود اتکایی را از طریق اصلی که در فصل خود تلقینی توصیف شده است میتوان پرورش داد ت برنامه‌های معین و مشخص برنامه‌های سازمان یافته حتی اگر ضعیف و کاملا غیرعملی باشند پشتکار را تشویق می کنند. جیم آگاهی دقیق اینکه فرد بر اساس تجربه یا مشاهده بداند، برنامه هایش درست است پشتکار را تشویق می کند حد زدن به جای دانستن پشتکار را نابود می کند چه همکاری همدردی تفاهم و همکاری هماهنگ با دیگران غالبا پشتکار را پرورش می دهد ه قدرت اراده عادت متمرکز کردن افکار روی برنامه ریزی برای دستیابی به یک هدف مشخص و معین به پشتکار می شود. خ عادت پشتکار نتیجه مستقیم عادت است ذهن تجارب روزانه ای را که از آنها تغذیه می کند جذب می کند و بخشی از آنها می شود. ترس که بدترین دشمن است را با تکرار اجباری اعمال شجوانه میتوان به صورت اثر بخش معالجه کرد هر کسی که جنگ را آزموده باشد این را میداند قبل از اینکه موضوع پشتکار را تمام کنید خودتان را گام به گام بسنجید و ببینید فاقد کدام یک از عوامل 8گانه ذکر شده در مورد پشتکار هستید این تحلیل می تواند منجر به کشفیاتی شود که شناخت جدیدی را از خودتان به شما خواهد داد. علائم فقدان پشتکار در این بخش دشمنان واقعیتان که سد بین شما و دستاورد ارزشمندتان می شوند را پیدا خواهید کرد. در این بخش نه تنها علائمی که نشان دهنده ضعف پشتکار هستند بلکه علل نیمه خداگاه این ضعف را پیدا خواهید کرد. اگر واقعاً می‌خواهید بدانید چه کسی هستید و قادرید چه کار بکنید، این فهرست را به دقت مطالعه کنید و بیتارف با خودتان روبرو شوید. اینها نقطه ضعف‌هایی هستند که همه کسانی که می‌خواهند ثروت بیاندوزند، باید بر آنها غلبه کنند. 1. عدم شناخت و تعریف دقیق و روشن خواسته ها. 2. تعلل با علت یا بی‌علت که معمولاً با یک مشت بهانه و عذر ناخوشایند همراه است 3 بی به کسب دانش تخصصی 4 تردید عادت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن به جای مواجهه مستقیم با مسائل به همراه عذر و بهانه 5 عادت تکیه کردن به بهانه ها به جای ارائه برنامه های مشخص برای حل مسائل 6. از خود راضی بودن این بلا درمان چندانی ندارد و امیدی به درمان مبتلایان با آن وجود ندارد 7. بی تفاوتی که معمولا در آمادگی فرد در پس کشیدن خود در همه مناسبت و عدم مواجهه و مبارزه با مخالف باستا پیدا می کند 8. تقصیر اشتباهات خود را به گردن دیگران انداختن و پذیرش شرایط نامطلوب به عنوان شرایط غیر قابل اجتناب نو زعف میل که علت آن نادیده گرفتن انگیزه است که فرد را به عمل وامی دارند ده تمایل و حتی اشتیاق در تسلیم شدن با دیدن اولین علامت شکست یازده فقدان برنامه های سازمان یافته دوازده عادت به بیتوجهی به ایدهها و غنیمت شمردن فرصت ها سیزده آرزو کردن به جای خواستن چهارده عادت به کنار آمدن با فقر به جای حرکت برای کسب ثروت فقدان میل به بودن، انجام دادن و مالک بودن پانزده جستجو برای یافتن میان برهای کسب ثروت، تلاش برای گرفتن چیزی بدون دادن چیزی به ازای آن که معمولا در عادت قماربازی باستاب میابد تلاش برای جوش دادن تند و تیز معاملات شانزده ترس از انتقاد ناکامی در تدوین برنامه ها و عملی کردن آنها به علت اینکه دیگران چه فکری خواهند کرد چه کار خواهند کرد یا چه خواهند گفت؟ این دشمن از اولین دشمنان است چون معمولا در ذهن نیمه خداگاه فرد وجود دارد و حضور آن به رسمیت شناخته نمی شود. اکنون بعضی از علائم ترس از انتقاد را بررسی می کنیم. اکثر افراد اجازه می دهند بستگان، دوستان و عموم مردم چنان بر آنها تأثیر بگذارند که نتوانند زندگی خوشی داشته باشند. چون از انتقاد میترسند بسیاری از مردم پس از اشتباه در انتخاب زوج به آن رابطه وفادار میمانند و زندگی فلاکتبار و ناخوشایندشان را ادامه می دهند چون از اینکه اشتباهشان را اصلاح کنند و مورد انتقاد قرار گیرند میترسند هر کسی در مقابل این نوع ترس تسلیم شود آسیب جبران ناپذیری به موفقیت خود وارد میسازد میلیون نفر چون از انتقاد می‌ترسند، از اینکه تحصیلات دیرهنگام خود را ادامه دهند چشم پوشی می کنند. مردان و زنان بیشماری ام از پیر و جوان هستند که اجازه میدهند بستگانشان زندگیشان را به نام وظیفه نابود کنند چون از انتقاد می‌ترسند. وظیفه مستلزم آن نیست که فرد به نابودی آرزوهای شخصیش و نابودی این حق که به روش خودش زندگی کند رضایت دهد افراد از اینکه از فرصت ها در کسب و کار استفاده کنند امتنا ورزند چون از انتقادی که در صورت شکست خوردن به آنها وارد خواهد شد میترسند. در چنین مواردی ترس از شکست خوردن از میل به موفقیت بیشتر است. خیلی ها از اینکه اهداف بلندی را برای خود تعیین کنند امتنا می کنند، یا حتی از انتخاب یک حرفه اجتناب می کنند چون از انتقاد بستگان و دوستانی میترسند که شاید به آنها بگویند زیاد بلندپروازی نکن مردم فکر می کنن دیوانه شده ای وقتی اندرو کارنگی به من پیشنهاد کرد 20 سال صرف سازماندهی فلسفه موفقیت فردی کنم اولین چیزی که به ذهنم رسید ترس از این بود که دیگران چه میگویند فوراً ذهنم شروع کرد به بهانه تراشی بهانه هایی که همه آنها از ترس از انتقاد نشات می گرفتن. چیزی در درونم میگفت تو نمیتوانی این کار را انجام دهی این کار خیلی بزرگ است و وقت خیلی زیادی میخواهد بستگانت چه فکری میکنند چطور امرار معاش میکنی هیچکس تا به حال فلسفه موفقیت را تنظیم و تدوین نکرده است تو چطور باور داری میتوانی این کار را انجام دهی تو کی هستی که چنین هدف بالایی در سر داری یادت باشد تو اشرافزاده یا بزرگزاده نیستی تو از فلسفه چه میدانی مردم فکر میکنن تو دیوانه شده‌ای چرا کسی دیگری تا به حال این کار را انجام نداده است این سوالات و سوالات فراوان دیگری به ذهنم خطور می‌کردند به نظرم میرسید گویی تمام دنیا توجه خود را ناگهان به من معطوف کرده و می‌خواهد مرا از عملی کردن پیشنهاد آقای کارنگی منصرف نماید اما فرصت خوبی داشتم که پیش از اینکه ترس‌هایم کنترل مرا به دست بگیرد آن را نابود کردم بعدها وقتی هزاران نفر را تحلیل نمودم کشف کردم که اکثر ایده ها مرده متولد میشوند و از طریق برنامه های مشخص برای عملکرد فوری باید نفس حیات در آنها دمیده شود زمان پروراندن یک ایده زمانی است که آن ایده متولد میشود. هر ای که آن ایده زنده می کند فرصت بهتری برای زنده ماندن و بقا به آن میدهد. ترس از انتقاد ریشه نابودی اکثر ایدههایی است که هیچگاه به مرحله برنامه ریزی و عمل نمیرسند. خیلی ها باور دارند که موفقیت مادی نتیجهیک شانسهای خوب است. این باور بدون پشتوانه نیست ولی کسانی که کاملا به بخت و شانس تکه می کنند تقریبا همیشه نامید می‌شوند، چون از عامل دیگری که برای موفقیت باید وجود داشته باشد قفلت می کنند. آن عامل شناخت و آگاهی است که شانسهای خوب با آن حامل می‌شوند. در طول دوره رکود اقتصادی، کمدیانی به نام دبلیو سی فیلدز همه پول خود را از دست داد و بدون درآمد و بیکار شد. وسیله امرار معاش او دیگر رونقی نداشت. سن او بیش از 60 سال بود. خیلیها در این سن و سال خودشان را پیر تلقی می‌کنند. او چنان مشتاق بود که دوباره به صحنه کمدی برگردد که پیشنهاد کرد بدون دستمزد در یک حوزه جدید یعنی حوزه فیلم کار کند علاوه بر دیگر مشکلاتی که او داشت به زمین خورد و گردنش آسیب دید اگر خیلی های دیگر جای او بودند دیگر ادامه نمی‌دادند اما سرانجام شانس و بخت به او رو کرد و او بالاخره موفق شد لیکن این موفقیت او اتفاقی یا تصادفی نبود ماری درسلر در سن 60 سالگی بی پول و بیکار شد. دنبال شانس ها رفت و شانس هم به او روی آورد. پشتکار او بعدها موفقیت حیرت در زندگی برای او به ارمغان آورد. موفقیتی در سن و سالی که خیلی از مردان و زنان وقتی به آن سن و سال برسند آرزویی ندارند که برای آن تلاش کنند. ادی کانتور همه ثروت خود را در سقوط سهام در سال 1929 از دست داد اما هنوز پشتکار و جرعت داشت. او با این پشتکار و جرأت و به اضافه دو چشم تیزبین خودش را بالا کشید و به درآمد هفتهی ده هزار دلار رسید. اگر کسی پشتکار داشته باشد میتواند حتی بدون داشتن خصوصیات فراوان دیگری پیشرفت خوبی کند. تنها شانسی که فرد می تواند آن تکه کند شانس خود ساخته است. این شانس ها از طریق به کار گرفتن پشت کار حاصل می شوند. نقطه شروع مشخص و معین بودن هدف است. از صد نفری که می بینید بپرسید چیزی که در زندگی بیش از هر چیز دیگر می خواهند چیست؟ 98 نفر از آنها نخواهند توانست این چیز را به شما بگویند. اگر به آنها فشار بیاورید که جواب بدهند، بعضیها ها میگویند امنیت. خیلیها میگویند پول برخی نیز میگویند ثروت و قدرت. کسانی هم میگویند خوشبختی. گروهی نیز میگویند موقعیت اجتماعی راحت زندگی کردن یا توانایی در آواز خواندن. اما کمتر کسی قادر خواهد بود این شرایط را تعریف کند. یا کمترین سرنخی از برنامه‌ای بدهد که این آرزوهای مبهم را با آن محقق کند ثروت با آرزو به دست نمیآید؟ ثروت فقط به کسی که برنامه های مشخص و خواسته های مشخص از طریق پشتگار مستمر داشته باشد جواب می دهد چطور پشتکار را پرورش دهیم؟ چهار گام ساده بیان می شود که منجر به عادت پشتگار می شوند. انجام این گام ها مستلزم داشتن هوش زیاد یا تحصیلات خاص نیستند ولی اندکی تلاش یا وقت میخواهند این گام های ضروری عبارتند از 1 هدف مشخصی که یک میل شدید به آن کمک کند تا تحقق یابد دو یک برنامه مشخص که با عمل مستمر همراه باشد 3 ذهنی که در مقابل همه ی تأثیرات منفی و دلسرد کننده از جمله پیشنهادهای های منفی بستگان، دوستان و آشنایان کاملا مقاوم باشد چهار اتحاد دوستانه با یک یا چند نفری که شما را تشویق خواهند کرد برنامه و هدفتان را تا آخر ادامه دهید این چهار گام برای موفقیت همه ی اقشار جامعه ضرورت دارد هدف همه سیزده اصل فلسفی که در این کتاب مطرح شده است این است که فرد را قادر سازد تا این گام ها را برای خود یک عادت سازد اینها گامهایی هستند که منجر به آزادی و استقلال فکری می اینها گامهایی هستند که منجر به کسب ثروت می شوند. چه کم چه زیاد این گام ها به قدرت شهرت و اعتبار جهانی ختم می شوند اینها چهارگامی هستند که شانس های خوب را تضمین می کنند همچنین این گام ها باعث می شوند فرد بر ترس دل سردی و بیتفاوتی غلبه کند همه‌ی کسانی که یاد میگیرند این گام ها را بردارند پاداش عظیمی دریافت می کنند و مثل این است که یک چک سفید امزا دریافت کنند و هرچه چه بخواهند زندگی به آنها بدهد یک قدرت رازالود به افرادی که پشتکار دارند توانایی غلبه بر مشکلات میبخشد آیا خصوصیات پشتکار شکلی از فعالیت معنوی ذهنی یا شیمیایی را در ذهن فرد ایجاد می کند که نیروهای فوق طبیعی را در اختیار او میگذارد آیا هوش بینهایت با تمام توان به کمک فردی میآید که حتی پس از شکست در مقابل تمام دنیا همچنان میجنگد؟ وقتی مردانی مثل هنری فورد را دیدم که از صفر شروع کردند و یک امپراتوری عظیم صنعتی راه انداختند و چیز زیادی جز پشتکار نداشتند یا توماس ادیسون را میبینم که کمتر از سه ماه مدرسه رفت ولی مخترع پیشرو دنیا شد و پشتکار را به ماشین سخنگو، ماشین تصاویر متحرک و لامپ التهابی و بیش از 50 اختراع مفید دیگر تبدیل کرد سوالات مشابه دیگری از خودم میپرسم. من این امکان را داشتم که در طول چندین سال هر سال آقایان فورد و ادیسون را تحلیل کنم و در نتیجه این فرصت را داشتم که آنها را از نزدیک مطالعه کنم. با اتکا به این فرصت شناخت من کاملا واقعی است و با اطمینان میگویم که هیچ خصوصیتی به جز پشتکار را در آنها نیافتم که حتی اندکی نشان دهنده منبع اصلی دستاوردهای حیرت انگیزشان باشد. وقتی به بررسی منصفانه پیامبران فیلسوفان، مجزهگران و رهبران مذهبی گذشته میپردازیم به این نتیجه اجناب می‌رسیم می رسیم که پشتکار، تمرکز تلاش و مشخص بودن هدف منبع اصلی دستآورهای آنهاست مثلا ماجرای عجیب و حیرت انگیز پیامبر اسلام را در نظر بگیرید زندگی او را تحلیل کنید او را با افراد موفق عصر ما در صفت و دارایی مقایسه کنید و ببینید آنها چقدر در یک خصوصیت برجسته که پشتکار نام دارد اشتراک داشتند اگر خیلی علاقه دارید قدرت عجیبی که این توان به پشتکار میدهد را بررسی کنید زندگی نامه پیامبر اسلام مخصوصا کتابی که توسط قربان سعید نوشته شده است را مطالعه کنید نقد کوتاهی که توماس سوگرو در روزنامه تریبون از این کتاب ارائه داده است نشان خواهد داد که چه نفی میبرند کسانی که وقت میگذارند و کل داستان زندگی ایک از چه گفتنگیست ترین نمونه های قدرت پشتکار که تمدن تا به حال به خود دیده است را میخوانند. آخرین پیامبر بزرگ نقد توماس سوگرو محمد یک پیامبر بود اما او هیچگاه معجزه از خود نشان نداد او به صورت رسمی تحصیل نکرد تا چهر سالش نشد رسالت خود را شروع نکرد وقتی او اعلام کرد که پیامبر خداست و کلام راستین دین را آورده است او را مسخره کردند و دیوانه نامیدند او از زادگاه خود یعنی مکه تبعید شد و پیروانش از مادیات محروم شدند و بعد از آن به بیابان فرستاده شدند بعد از ده سال تبلیغ چیزی که گیرش آمده بود تبعید و فقر و تمسخر بود. در کمتر از دو سال او حاکم عربستان، مکه و رهبر دین جهانی جدیدی شد که چنان موجی به دنیا داد که تا رودخانه دانوب و پیرنه رسید. این موج سه عامل عمده داشت. قدرت کلمات، کارآمدی عبادت و رابطه انسان با خدا. او در خانواده یک فرد محروم و بیبزاعت از قبایل مکه به دنیا آمد. از آنجایی که مکه شاهراه ملل محل استقرار خانه کعبه و سنگ معجزه آسایی به نام هجر و شهر بازرگانی و تجارت و مرکز مسیرهای داد و ستت بود بهداشتی نبود و بچه های آن را به بیابان می‌فرستادند تا به وسیله اعراب بادی نشین بزرگ شوند بنابراین محمد با شیر چادرنشینها یا دایه‌ها ها پرورش یافت و قوت و سلامت یافت او از گوسفندان مراقبت می کرد و مدتی بعد به عنوان رهبر کاروانهای یک زن ثروتمند به خدمت آن زن درآمد. او به همه بخشهای دنیای شرق سفر کرد، با افراد زیادی که اعتقادات متعددی داشتند گفتگو کرد و دید که مسیحیت در حال سقوط است و مسیحیان به شکل فرقه هایی در آمدند و با هم می جنگند. وقتی او 28 ساله بود، خدیجه همان زن ثروتمند از او خوشش آمد و با او ازدواج کرد. پدر خدیجه با این ازدواج مخالفت کرد. در نتیجه خدیجه پدر خود را متقاعد کرد و موافقت او را جلب نمود. بدین ترتیب محمد صلی الله به مدت دوازده سال به عنوان یک تاجر ثروتمند و محترم و بسیار باهوش زندگی کرد. سپس در کوه اعتکاف گزید و یک روز با اولین آیه قرآن برگشت و به خدیجه گفت: فرشته مقرب یعنی جبرئیل بر او نازل شده است. و به او آیاتی آموخته است قرآن که کلام وحی خداوند است بزرگترین موجزه در زندگی محمد صلی الله است محمد صلی الله نه شاعر بود و نه زبان‌آور. اما آیه های قرآن را که دریافت می کرد برای مؤمنان قرائت می‌نمود و برتر از هر شعری که شاعران حرفی می توانستند به بود این برای عرب به معنای موجزه بود از نظر آنها فساحت سخن بزرگترین قریحه بود و شاعر از همه قدرتمندتر بود علاوه بر این قرآن می میگفت همه ای انسانها از نظر خداوند برابر هستند و دنیا باید دارای یک دین که اسلام نام دارد باشد نوآوری سیاسی و خاص محمد صلی الله به نابود کردن همه 360 بوتی که در خانه کعبه بودند باعث تبعید او شد بتها قبایل بیابانگرد را به مکه می آورد و این به معنای رونق تجارت بود در نتیجه تاجران و بازرگانان و سرمایه‌داران مکه به او حمله کردند محمد صلی الله به مدینه هجرت نمود و خواستار تشکیل حکومت اسلامی بر کل جهان شد اسلام ظهور کرد از میان بیابان شعله ای برخاست که خاموش نشد یک سپاه مردمی به عنوان یک واحد میجنگید و آماده بود شهید شود بدون اینکه خم به ابرو آورد. محمد صلی الله از یهودیان و مسیحیان دعوت کرد که به او ایمان بیاورند چون او در حال ایجاد یک حکومت دینی جدید بود. او از همه کسانی که به یک خدای واحد اعتقاد داشتند دعوت کرد تا دارای ایمان واحدی شوند. اگر یهودیان و مسیحیان دعوت او را میپذیرفتند، اسلام دنیا را فتح می کرد آنها دعوت او را نپذیرفتند. حتی نوآوری محمد صلی الله که مبارزه بشر دوستانه بود را نیز نپذیرفتند وقتی لشکریان پیامبر اسلام وارد اورشلیم شدند، به خاطر ایمانی که او داشت هیچ کس کشته نشد. چند قرن بعد وقتی صلیبیان وارد این شهر شدند، به هیچ مرد، زن یا بچه‌ی مسلمانی رحم نکردند و همه را از دم تیغ گذراندند. اما مسیحیان ایده مسلمانان را که تأسیس محل یادگیری یا دانشگاه بود را پذیرفتند.